علی اکبر امام حسین کیه؟ این قرار بگم امام حسین معصوم حجت خدا میگه هر وقت حوث پیغمبر میکردم میگفتم علی جان بیا چلو. اشبه و ناس خلقن و خلقا به رسول الله اشبه و ناس خلقا و خلقا حالا خلق که خب نبست نتیجه است قیافه ظاهرا شبیه‌ترین به پیغمبر خلقا خوی و منش و رفتار و کردار به رسول خدا از همه شبیه‌تر حالا این پسری که برای اینکه بدونیم در چه سطحی اجمالا در حد فهم ما میگه وقتی علی اکبر داشت به سمت میدان میرفت امام حسین این آیه رو خون. ان الله استفا ادم و نوح و آل ابراهیم و آل على علل عالمین ذریه بعض امن بعض والله السميع العلیم این آیه رو مامو سنبری چی خونده من مندازی فهمو خودم میگم ان الله استفا ادم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران یعنی در میان این همه خلق خدا خدا بعضی ها رو جدا کرده بلا تشبیہ بلا تشبیح. یه معلمی 100 تا شاگرد داره دو تا سه تاشو جدا کرده میگه اینا یه حساب ای داره با اینا اسرار مگو دارم مثل اصحاب سری که ائمه داشتن میگه در عالم خلقت بعضیا حساب دیگه دارم علی اکبر یه حساب دیگه داره میخواد امام حسین این رو بگه شاید بی جهت هم نیست وقتی که امام حسین داشت میرفت کنار بدن علی اکبر زینب سلام الله میگه فریاد زد وا اخیا برادر زاده شهید شده میگه وا خیا ولی دید داره حسین غالب توهی میکنه چون امید حسین داره از او گرفته میشه لذا علی اکبر اومد بابا جون منم میخوام برم آقا اجازه فرمودن علی اکبر رفت جنگ نمایان و مفصلی کرد شمشیری بر بعد از اینکه حالا اومد و بار دوم شمشیری بر فرق علی اکبر زدند فرق شکافته شد خون می اومد دد نمیتونه روی اسب خودشو کنترل کنه از شدت این ضربه دستاش آورد به گردن اسب بغل کرد که روی اسب بمونه این اسب بیاره خون سر آقا که همینجور میریخت اطراف را محاصره کردن یکی با نیزه میزد، یکی سنگ می پرون. یکی با شمشیر و قلاف شمشیر میزد این خونه ها زیاد شد همینجور که میومد رو چشم اسب رو گرفت اسب ندید از کدوم طرف بره یه دفعه در اثر خونی که چشم اصف رو گرفته بود صاف رفت تو دل دشمن دشمن وقتی دیدن بدن علی اکبر حسین روی اسب تو اونها انقدر بگم اربن اربا هر که هرچی دستش بود زد وقت صدای علی اکبر بلند شد یا عبتا علیکم انسلام بابا جون خدا حافظ حاضا جدی رسول الله این جد رسول خداست یقراه کس سلام به تو داره سلام میرسونه و یقوله عجل القدوم علینا میگه حسین جان تو هم زود بیا جامعه عبر سراهم کرده یه وقت حسین رسید دید سر علی اکبر شکافته خون همه جارا گرفته خم شد دید دلش آرام نمیگیره صورتشو گذاشت صورت علی اکبر حالا میخواد بدنو به خیمه بیاره حسین نمیتواند میگه جوانانه و هاشم بیایید علی را برداره خیمه رسانی جوانایی که عرض منو میشنوید امام حسین از جوانای بنی هاشم کمک خواست بدن علی اکبر رو به خیمه ببره از توی جوان کمک میخواد دین حسین راه حسین هدف حسین مکتب حسین رو به دیگران برسانی. میگه یه وقتی دیم زین از خیمه آمد بیرون دستش شروع صرناه ده میگه خو